حکایت دزدی گدایی را گفت شرم نداری که دست از برای جوی سیم پیش هر لعیم دراز می کنی. گفت دست دراز از پی یک حب سیم به که ببرند به دنگی نیم.